حکایت موسی علیه السلام درویشی را دید از برهنگی به ریگندر شده، گفته موسی دعا کن تا خدا عزبجل مرا کفافی دهد که از بیتاقتی به جان آمدم، موسی دعا کرد و برفت، پس از چند روز که باز آمد از مناجات، مرد را دید گرفتار، و خلقی انبوه بر او گرد آمده گفت این چه حالت است؟ گفتند خمر خورده و اربده کرده و کسی را کشته قساسش همین کنند گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی عاجز باشد که دست قوبت یابد برخی زد و دست عاجزان بر تابد ولو بسط الله الرزق لعبادهی لبغو فلعرز موسی علیه السلام به حکمت جهان آفرین اقرار کرد و تجاسر خیش استغفار مازا که یا مقرور خطر، حتی هلکت فلیتن نمله لمیتر، سفر چجاه آمد و سیم و سیلی خواهد به ضرورت سرش. آن نشنیدی که فلاتون چه گفت، مور همون به که نباشد، پرش. پدر را اصل بسیار است، ولی پسر گرمیدار است. آن کس که توانگرت نمیگرداند او مصلحت تو از تو بهتر داند